اوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب الالمین و الله اللہ سيدنا رسول الله و آله طیبین قوم شرمسیم و آله طیبین الطاهرین الماسومین و لا تزایمت و اللهم وفقنا جمعی المشتردین ورحمنا ورحمتی که آرحمت رحمی ارز خانم بله که راجب تقسیم ارخاص اصول به مناسبت دخول در وقت اصول عملیه برای این که اصول عملیه در اصول روشن رو بشه یه مقدمه رو فرموزن ما هم توضیحات رو کردیم تقسیم خماسی که میخواستند ظاهرا که یک به نظر اما دقیق باشه باشند هدفشون این بوده که دیگر احادث وصول قابل تقسیم این دسته هایی که طرحی داشته باشن برای تقسیم بندی احاس اصول مضافندی این اصولان در این طرح طرح ایشان قدس سره بیشتر نظرشون به همون است که در اصول شیعه فعلا مطرحه و که در ابحاث فعلی اصول شیعه اختلاف حتی مثل معالم مباحثی که مربوط میشه به مصادر تشریع خود کتاب و سنت دیگه مطرح نیست راجب کتاب بحثه حجیت زوائد رو مطرح کردم راجب سنت هم میشه بحثش رو به خبر واحده اما خب هم کتاب و هم سنت مباحث فرابانی دارن دیگه حالا به این مقدار مطرح شده اون مقداری که ایشون وقتی و روشن شد که به نظر ما اون راه درست در تقسیم افحاس اصول با در درداری در یعنی این تقسیم رو که ما اعز کردیم مجموعه افحاسی است حالا در ممکنه یک کتاب واقعی به این شکل نیامده اما در مجموعه این ابواس در مجموعه کتب و اصول ذکر شده و اون ترکیبی که عرض کردیم ابتداا نکته تاریخی شو عرض کردیم از کردیم بعد از زمان از زمان صحابه وما بعد اصول به عنوان یک ارتكازات میشه اسمشه رو برشونیم چون مثلا استدلال بکنه مثلا بودن به قولیه تعالی قال الله تعالی سمعت رسول الله نه این تعالی بسید اصولی بیاره از زمان صحابه اصول که میعنی بحثایی که ما اسمش علانه اصول میذاریم در حقیقت اساس بحث ها در پیرامون مسادر تشریه بود ما داری به اسمش باشیم حجت ثبوتی یعنی مثلا اجماع حجت استحسان حجت خیاس حجت مسادر جدیدی رو سعی کردن برای تشریق نظر رو و عرض کردن بیشتر هم از زمان دومیه قیاس رو با عنوان رعی و با عنوان استحساب و رعی درسته مجموعش رعی میگفتن و اجماع رو و بعد تقریشن حتی ادعا شده که مثلا عبدالله مسعود ترخ خودجیت استحسان استحصان رو هم میشون برگشتش برمون قیاسه از عبدالله بن مسعود جیت استحصان رو شده ارز کردم چون استحصان یک تأثیر فراوانی داره در دنیای فرح حتی زمان ما چند با توضیحش در مراده عبدالله بن مسعود از استحصان اینه که گایی و گایی مقلبی در شمعه اسلامی جا میوفته خود در قطع کنیم در جامعه هستان یک مکنی جا هست همه اگر بخوای اون رو با زوادت دینی زور رو کنیم مشکل داره یه همین که در جامعه جا افتاد حجت روشن خب شان شده استثاب چیم مثالی که اون زمانها ها بود این رفتن حمام چون رفتن حمام هم هستون با اول من دو هم یک درخم در و همم میدارن خب این جا افتاده بود مردم میادن همم یک هم میدارن می اما این روی زوابط علمی مشکل داره چون اگر اجاره باشه باید زمانش محلیت باشه مقدار مصرف آب محلیت باشه خب یه کسی نیم ساعت میورد یه کسی بیشتر میورد مصرف آب یه کسی کم مصرف میکرد یه کسی بیشتر مصرف میکرد روی زوابط جور رو در نمیامد مثال هم که در زمان ما هست زمان ما هست, زمان ما هست. زیاده اصلا این نظام بانکی نظام بانکی آب در کش وکنه مخلوق روز وقت حساب کنیم مشکل ربا داره و مشکل دیگه داره پس بیاییم بگیم که این یک راهیه که پیشنهاد کرده که هستن اگه این راه رو چون پیش ما که حجیت نداره این اهل سنت این اگر درست بشه خیلی از مشکلات که در جامعه ما جا میوفته در جامعه اسلامی وکن وقتی مخلوق ریش شایع شرعیش نگاه کنیم انتباقش با مشکل داره بگیم چون در جامعه راضه ما را آه المسلمون حسنن فهوه اندالله حسنون استحسان و بکنه برده برده راضه از خیلنبر گفتن خود محکمه این اهل سنت گفتن در کلام رسول الله نیست از کرده مسجده که دیگری که بعد بازم آمده الان توی اصول ما ذک نمیشه استحسان به این معنا تو اصول ما نیامده در اصول اهل سنت آمده که خیلی تصادفاً زمان ما تأثیرش پیش از بقیه این مسادر است که محل کردم. و اون شورا، اصل شورا که اگر جامعه اسلامی افرادی رو گذاشتن اهل مشوره، به اینا یک تأثیر می گرفتن تمثل که با این موارد شورا بیرن اینا یک تأثیر گرفتن اون میشه شه این تصویه خوب در قسمشون الان هم تو زمان ما مثلا تو ایران تیران مطرح شده در زمان محلوطن مطرح شد یه جور مطرح شد چون این خیلی ترسی بذاره این در کتب اصول ما نیامده، این مسئله تشویی چون قبول نکردن از خود نیمده چون قبول نکردن مسلم گرفتن اما ای این در مصادر اهل سنت حد مثل احکام ابن حد در هزار سال قبل ترمید اشون در در اونجوری داره چیزی قبول نمیکنه شورا. رو یه از شورا رو خود منسادر تشریع میدونه. این همه نظامی که الان توی ما گگای مطرح میشه که آیا مجلس شورا مجلس مشورتیه یا واقعا مجلس شورا شورا یعنی تصمیم میتونه بکنه. و حتی اینها درست تصویر نکردن. حتی میشه تصمیم گیری بر اساس سنت میکنه. فرض مثلا تصمیم بکن شورا که تصمیم در هر ذبیحه نباشه که مشکلات داره و داره به صورت غیرمخصوص مصرف میشه و تا دو اون تکلیف شرعی از در ولایما باشه انجام نمیشه این مجلس مثلا مجلس شورای تشکیل بدن مجلس تشکیل داره تو ایران ما از اول که ترجمه شد مجلس شورای ملی اما الان این اصلا ارثو خدمت در دنیای عرب مجلس شورا نمیگن اگر میشه خود مجلس در زبان عربی این شورا این دو خود مجلس درست مثل مجلس تاون پلا یعنی شورای همکاری خود مجلس در وقت همه ولیزا باز بگفتن مثلا شورایی مجلس در حال این غلطی که الان در دوان ماه ها شاید شد کیف ماکان این هم جزء مسادر تشریعی بود نه اینکه مشورت بدن فرصوی مثلا به ولی فقیه مثلا این با مثال اگر نظام بلایقی باشه الان کیف ماکان این مسادر تشریف از زمان صحابه مطرح شد که خب بحثی سنگینی هم بود انصافت در دنیای اسلام خیلی تأثیر گذار بود یکی از بحث های بسیار سنگین در دنیای اسلام همین مسادر تشریف هم و از خدم اضافتن برای این که این قدیمترین است که ما با عنوان اصول در دنیای اسلام داریم در تاریخ اسلام داریم تأثیر این مسئله تاثیر، مذهبی یعنی طائفه ای یعنی این مساله مثلا قیاس رو قبول بکنیم یا نکنیم این منشأ شده دو طائفه پیدا بشن مثلا مسائلی که در مصادر تشریح وارد شد موجب انقسامات فرقهی مذهبی شد طائفی شد مثلا یه طائفه گفتن رسول همون صحابه مثل عمر یا سروجت نیجنستن رعی سر خودتر امیر و مومنی رعی به خودتر نیزن. این منشه شد دو تایفه درست شد از این بحث های زمان صحابه این قسام مذهبی دنبال. خب این بود تا بعد در گران فقه آمد خب. تو بحثای فقه هم ترسیل گذار بود دیگه خود پقوای صحابه مثلا یا اجماع صحابه مثلا که از موافق بودن از مخالف اما تدریجن با دور شدن از اهدسه ها و بعد تابعی و بعد فقها مسائل دیگری هم در فیقت تحصیل گذار مثل مثلا دلات سیخه افراد مثل بحثای همامر نواهی اشتماع نه مقدمه باچه دیگه چیز دیگری هم مطرح شد خاینه هایی اطلاق حتی بحث استعمال لحظه مشترک در اکثر از معنا این از همون عهد اول, اول دوم ها این قدیم جدید نید از در قرن اول دوم از ما مباحث اصولی در فروع فقهی تجلی پیدا میکنه، به عنوان اصولی مفتح نمیشد در تدریجا در اواخر قرم دوم که بنا شد اصول جمع بشه و تدریجا که تو با اصول نوشته شد و بعد از قرآن دوم سه مو دیگه مباحث و اصولی رو که اهل سنت داشتن در حقیقت در دو محور بود کلی مواهیس و اصول در دو محور بود یکی مسادر تشریف یکی طلوع اصباح حجت مثل ظواهر مثل خبر واهد اینها این, این مسائلی که از همهش مهمتارم به داشتال مسئله وجود خبر واهد بود. ولی ازا جامعه به اینطور گازالی در اصطلاح اصولی حجت میگفتنن پس کی که میگیم کتاب حجته اجماع حجته این لحظه حجت دو معنا داره پیش عهد سنت حجت اجماع، یعنی مستر تشریح پیش ما که میگیم اجماع حجت این طریق است داره احلاظ سنت دیگه قول امام بقوله معروف ما پس سناولین مبارث اصولی فیمابر در این دو محور بود و ایما یک تسامحی در لحظه حجت می کنم که ماهیت این رو تو بحثی بفهمید مسائل تشریعی کجا در مسائل ترویج اثبات کجا و در مسائل ترویج اثبات طائفه ای نمو چون برای من ارزش داره یعنی مثلا تو بحث اجتماع هم نه ممکنه یک حنفی قائل به اجتماع بشه این حنفی نباشه یک شافعی باشه یک شافعی نباشه یک فقهی چیه باشه اجتماعی باشه یک فقهی جهه اجتماعی باشه اینا مسائل مذهبی نبود یعنی طبیعت مسائلی که از قرن دوگم غیر از مسادر تشریف توی اصول آمن در اصول مسادر تشریف مذهبی شد چون به صاحب برگشت مذهبی شد مثلا کسی شیعه باشه یه قیاس حجده با علمای از ما نیست از ما خارجی اینا مذهبی شد به از سنی باشه یه قیاس حجدی خب که ادهی از علمای هم یه مثلا سونن لیست اش یاد می امنشی اپیشونا کسی که با اصول اون مخالف باشه مثلا بگه قیاس حجت نیست یا, با ها مثلا نیست یا اجماع حجت نیست انا اینکه از ماکان از گذشته داریم که سنی که تندرو هستن نقیاس حجت نه, نه اجماع معارض محترم به تشریع نیستم مثل خود درد هز. نه, نه نه مثل ماسیه حجت میذنه و نه رو و اجماع مدینه و نمیدونم شورا و تمام این هم در همین جلده اول راجعه دویم راشد خون میدیم جامعه در این کتاب احکامش این ها را همه رو رد کرده مناقشه که یاد برد کرده این راجع به طرح کلیه اصول در میان اهل سنن خب تقریبا مسئله دیگه اضافه شد پیاره طبیعت علوم اعتباری این طوره که در طول زمان بهش اضافه میشه چراش این موضوع حقیقی ندارن طول هوش موضوع حقیقی نیستن از کردیم همین راهی رو که راه ما وازیا گفتیم راه ایشون هم خودشون در مقاله ما وازیا راه خودشون دیو استاد ها مرسه که من گفتم وازیا وازیا از من بگیرش و اون که در علوم حقیقی تابع موضوع باشیم تمایز علوم به اون باشیم و در علوم اعتباری دنبال اهداف و اغراض باشیم. یعنی در علوم اعتباری هدف ما قدرت برای استنباط باشیم در اصول. در نه هدف ما سیانت لفت از غلط باشه مسئول بودن لفت از غلط باشه و کم در بقیه علوم اعتباری که مثلا در ریکال ما کسی این روباست رو تشریف بدیم رضا از سرین مواحث در یک طایفه در یک زمانی یه مواحث خاص بود بعد اضافه شد و اضافه شد این طبیعت علوم اعتباره چون موضوع واحد ندارم قلومه هجی موضوع واحد دارم من قلومه موضوع واحد که بدن احسان درده خواهی نمیشه موضوع به بکن اما فرسانی در وجالیه بحثش در اول مثلا اول وجال از کردیم مثلا وطاقه بعدها تمیز و طبقات و بلان و تمیز از ما و طبقه و اینها هی یواشوش دیدن نیاز پیدا میکنن در معرفت حدیث و این جهات اینها به حساب نیاز اضافه شد بسیار هم همینطوره این تدویجم بشه اضافه شد از کردیم تا زمان ما با در مذرگرسن مجموعه کتب اصول شیعه، زنی و غیره سزدگیه ها اون چی که الان میشه مثلا تقسیم بندی که ادواق اصول رو که جامعه تمام این کلمات باشه از کلی این مقدمه میخواد که توضیحش بذاشت و پس لعبود اشراجه به حکم و احسام و حکم و توابط بین حکام و تلاق زمانه نبتسانه نخور این باعثی در تکیه کنه هست عرض کردن از روزون اهل سنت این بحثش جدار کردن در کتاب ما نیست در, در کتاب دستی حوضه ما نیست اما در کتب اهل در همه شمیه نیست خوب فکر که مبارس شما نهی و مبارس مقدمه واجه و این رو اونجا آوردن جاش هم هست انصافا فکر خوبی بحث دوم راجع به مسادر تشریع بشه که اینو خب معظم اهل سنت آوردن قدیم ما هم مثل معالم داره کتاب هستوندن مبحث ثبوت مباحث الفاظ بشه که مجموعه الفاظ از وضع و غیر وضع و مشترک باسته همه اینا اون مباحث الفاظ ها مباحث عوامر و نواهی رو اون قسمت ها بشه مبحث چهارم هم مبحث حجر و امارات و طرق اصبات بشه که این, این از قرن دوم در اصول آمده در کتاب ما هست در کتاب ما ما در هایین بحثی که از آرکمی خوندیم به کاغنده شیف یعنی تحت عنوان زن, شهر تحت عنوان زن، رو بود شیف تحت زن بود که اولش به اصلاح زواهر بود و جرد زواهر بود و شهرت بود و شما بود و خبر بود اینا طلاق اثباتی که مرموشش عبدالسالباه نمسه قبل پنج که آرکویم پنج شده توضیحاتش تکرارش جای تکرار مبحث اثیر هم اصول عملیه باشه البته در کتب احرسوندن غالبا اصول عملیه جدا نیامده غالبا چیز دیگه نام اصول عملیه رو جدا دار نیامدن که حالا در صورت بحث اصول عملیه روشن میشه که آیا خود اصحاب ما هم حتی اصحاب برایه رو تقریبا یه مدتی باشه معامله عماره میکردن این یا سوزیش میدونم خود رو خوب خیلی اماره میدونن. باشن در امارات تفصیل قائرن یک سری از امارات جهت کاشفیت داره این سری نداره چون تفصیل قائرن الان که ماکان و انصافا اگر بخوای کلیه ارهاص و اصول را نظر بیندازی لو کلیه الان صحبت مباحث دیگه اینا بر فلسفه ای به هست به فلسفه اصول هست میشه بحث کن یعنی ما مباحث اصول رو تحلیل عمیق بدیم تا مسائل رو جمع و جورتر کنیم، های واحد بیشتری برسیم میشه این کار رو میشه انجام. باکن درستان هست اینکه مثلا خب زوابتی داره که حالا الان وقتش نیست، نمیخوام بده صحبت بکنم. مهمترین نکتهش یکی اینکه که در تحلیل‌های ما خیلی دور نریم از سر و اصول خالصوش. خیلی تحلیل‌هایی باشه که باز به ملهقی هم و از جمله هم باشه. به اصول ناظر باشه، خیلی دور دور نبید. چون اون معلوم نیست نقطه درون نیازی نیست که این مباحث مستقلاً بشه میشه این مباحث رو در ذیل خود همین مباحث پنجگانه ای که از مقدماتش چرا چون علم اصول چون موضوعه احوال اس قابل توسعه است یه توسعهش اجازه فزده شده اش نداره مشکل نداره نیازی به انقاده علم جدید نیست ما احتیاجی نداریم که دنبال یه علم جدیدی بریم مثل فلسفه یه اصول فرم مثلا احتیاج به این قسمت نیست میشه همون رو تو خود مواهزه مثل فلسفه این شبه یه نوع مواهزی که یه وقتی به شبه بلاغه میگن بهش اصول میگن ما یه اصول نفرم داریم که آلا مثلا جلال سیوکیه رو جمع کرده نا محل اقراح. فی علم اصول نفر اصول نفرم میشه خب میشه اون رو خود ارحاس نفرم بیاریم الزام آغر نیست که اون در یکی علم و مستقل لگیرین چون علم نهر علوم اعتباری در علوم اعتباری قابل توسه هست مثلا ما در نهر حالا بیشتر به نقل اتفاد کردیم فلان اینجور گفت خب بخص فلسفیش هم بیریم تحیل فلسفیش هم بیریم یا به تحبیر اینوزی که پر لایش هم بیاریم. به نظر ما نیازی نداره این علوم بله اگر ما در طب یک زیربناهای جدیدی رو کاش کردیم که اصولا کللا طب رو به هم می ریزه ممکن است اون رو خارج از تر ب مثلا چون محرویز موضوعش مشخصه سرو اصول پیش مشخصه اما راجع به اصول نیازی نیست میشه همون راه رو بگیریم این افتراع و پیشنهاد ما پیشماده وقت نکته دیگری که الان هم روشن شد چون علم و اصول علم اعتباری است این علوم اعتباری میشه از زوای متعددی بررسی کرد اینا دیگه از خصائص علومه. لازم نیست حتما یک زاویه باشه. حالا من یک زاویه خودم میگم که چون آن نگفتن ممکن است مثلا برای اثر کشی شما باشه این زوایای دیگری هم ما بهشون همین کلیه این ابهاس رو در یک قالب های دیگری بریزیم. این قالب میکنم عرض کردم این همون قالبی است که در مجموعه کتب و اصول سومی و شیعه و زیدی من تا دیدم از قدیم تا حالا از جمع از کلامی که یه مدتی اصول در ممجوده با کلام بود این دیده شده یعنی این... اما حالا بسید یک کتاب واحدی که این تنظیم بشه نه الان تو ذهن خود من هم نیست که اما این مجموعه افحاسیست ای که این 1400 سال از اند صحابتان این زمانی که به خدمت هستن علم های اسلام اینها رو تنظیم کردن در بعضی از کتاب 3-16 در بعضی 4-16 یه مختلفه اما این یک راهیست که میتونه همه رو چند بود راه دومی به ذهن ما رسیده که میشه انجام داد و حاوی تمام عباس اصول باشه و مزاره خاص خودش داری و اون این که ما یک تقسیم بندی برای حکم کرده بودیم که همیشه عرض می کردیم یه مرحله چند داریم که همون حکم به اصطلاح و سه تا مرحله مبادی چنده که به ترتیب عبارتاً مساله را مفاست بعد حب و ب و بعد اراده و کراه هست و بعد از مقام چند خب این در قوانین بشری هم هست بعد از اون مرحلی مرحله ابلاغ و افصال و انزال کتب و به تدیر از انزال لعنزه رکم بیهیم بعد از اون مرحله ترجز و اصول مکلل و بعد از اون مرحله امتسان این هفت مرحله خود حب ساسا مبادی، سه مرحله مترخل از گفت خب ما میشونیم یه رو اصول این طوری بنبیسیم یه هم خوب ساسا گفتن اصلا اصول رو از اینجا شروع کنیم از مرحله مبادی بعد از این یه شد و بحث مفصل و مشواهی بشه که ما اینجا در بحث عرب مطرح کردیم در ملاقات و یکی از خوبی این بحث اینه که ما این رو به عنوان یک بحث اصول مقارن به اسلام. هستگر امسا دارم فره مغارن یا اصول مقارن الان عرب های که ترفازی میکنم مقارن ترفازی میکنم به زیر افاد یعنی طریق مقارنه ما غالبا در فارسی تطویری میگیم سا اقتصاد تطویری، یا تطویری یا یعنی بین چند تا مذهب مقایسه این اصول میشه اصول مقارن هم بشه یعنی یک ای بکنیم یا اصول تطویری بین قبائز قانونگذاری در بشر و قبائز قانونگذاری در شریعت مقدسه و فرسون یک دانشاق و غرهی هم میتوند موارد اختلاف اونها با ما و حوضایی شیعه یا حوضایی اسلامی چیه از اینجا مرحله ملاقات و شهر بدیم خب بوغض شهر بدیم این اراده و کراحت در اینجا اراده و کراحت تکریمی مراد نیست مراده اراده و تشریعی است این اراده و کراحت رو، و حقیقت اراده و کراه تشریعی و شهری بعد اون مباحثی که در وقت اول به عنوان حکم و احسام التضامات این توی خود حکم حقیقت و حکمی که پیده چند بعد مراقل به انزال و این مناسبت مباحثی مثل براعت و شعال و اینجور شیزا و توی مباحث تنجز عمده مباحث و اصول تو جا جامعه یعنی ما می کنیم اون بحث اصول رو که کردیم تو بحث مرحله فرنسوس رو یه دیزیار یه مرز مناسب است با بحث اش... مقام انتصال مثل مقدمه واجب ما معظم با مقدمه واجب اجتماع و و مسئله یه زد اینا برمی مقام انتصال و هر مباحثی رو که ما الان مطرح میکنیم هر کدوم جایگاه مناسب خودش رو پیدا میکنه و خوبی اینه که یک اصول مقارنی میشه ما میتونیم با سطح جهانی و سطح برمدلی که الان سطح علمی به اول موزی آکادومی که در دانشگاه ها مقبوله در باره قانون گذاری صحبت رو و هر کدومش رو هم جای خودش رو پیدا میکنه یک دوره کامل از اصول میشه اصولا کیفیت استدال که در به اصطلاح افکار دیگر در شریعت مقدسه و در شریعت مقدسه مختلف اسلام رو مظاهر مختلف های اسلام میشه جایگاهش رو کاملا مشخص بکنیم این هم به ذهن ما یه راهیست که میشه این مصول رو تدویر کرد که طبعا تا حالا نشده و آثار و خاص خودش رو داره که به ما میشه جامعه هم باشه یه راه دیگه هم هست که این راه شاید یک معنایی به لحاظ به قوله روزی ما علمیتر باشه چون الان در مبارثه این خیلی متحارف شده ربس میدن علمرو از حال تجرد خارج مکنه به حوادث تاریخی میدن ره به تاریخشون و ان که ما بیاییم ابحاص اصول رو هسب تاریخش در دنیای اسلام مطرح بکنیم این نتیجهش این میشه که مثلا چطور مسلمان ها رو به قیاس اردن رو به ری اردن و همین ترتیب که ارز کردن چطور بعضها مسائل حجج مطرح شد چه زاویههایی مطرح شد که مثله بیاد چه زاویانی مفرح شد که پس که مثلا هجه دیگر مفرح بشه چطور شد ریشار این همینجور مثلا بیایی که مسائل مثل اجتماع هم نه که پس از قرن شاروم و سه باما شاروم اینها مفرحه دیگاه ها رو مثلا اینا به بحث اجتماع از چه زاویان نگاه کردن اون فریعه دیگه به وقت اجتماع از چه زاویان نگاه کردن این راه میتونه هم در درورگیرنده تمام و ابحاظ که در آن در حوزه های ما مطرحه باشه و هم میتونه چون همراه زمانه برای انسان روشن تر جا بیفته چون همراه زمان همراه تاریخ مثلا یه مدتی تفکرات کلامی حاکم بود نتیجه شرع اصول این شد این کتاب های اصولی آمد این ریشه تفکر آمد اینجوری یه مدتی تفکرات فلسفی و منطقی حاکم شد نتیجهش این شد و حالا ما یا مزدستی تفکرات اخباری که شد، اصولی که به شد این بود، این زمینش این بود، مأموراتش این بود، مقدماتش این بود. این راه راهه به نظر ما راه بسیار کوچیکه که ما بیم افهاس و اصول رو در همون دسته تاریخی خودش بررسی کنیم. این راه هم حالا نشده، چون چیزی که نجوره فکر میکنن. این راه تازه نشده و نتیجهش این میشه که ما مثلا در احد صحابه مثل صحابه فکر کنیم در احد صحابه این بوده تا. در اهل باهاامست و چون از بهرا از افاق بزرگ و از افاق بالایی غذایا رو بررسی میکنیم به نحداریشهید میتونیم که ای راحت بفهمیم که این راه مثلا درست بوده درست نبوده مثلا این تفکری ای که پیدا شده محدودیت زمانی بوده در تفکراتشون میکن اینطور بوده ثق این تفکرات به نتیجه رسیدن و این تفکرات ثابت نیست مشکل داره. این راه راه به نظر مارا بسیار خوبی که ما یک دور و اصول رو به نحو استدلالی نه به نحو تاریخ نگاهی به نحو استدلالی به حسب شرح تاریخی خودش نیست بعد در امر دوگون این راجعه به امر اول و تقسیم بندی و اصول و پیشنهاده که به ذهن ما در تقسیم و اصول و تدوین علم و اصول میان در سفته 288 و در امر دوگون کلن و خلاصه امر دوگون یه بحثی که خب مرغوم شیخ مخرب کرد فکر میکنم شیخ نظر براش شد این بود ولی بعد دیگه اصلا مرحوم نایین و گرنه آمدند دو دیگه بحث شد شاید در کتیم و اصول گفتو در شک اما انتظار است لحول حال است و صبر و املاع و علی تریدساني اما شکل تکیه یا بودم به و علی تریدساني یکم که نهت دریافتیم چه اتفاقی کرده اصول رو من این شد که بعدها بیان بگن چرا اصول عملی منحسر از شهات است؟ آیا این وجه این حسار به استقرائه یا وجه این حسار عقیه دیگه خب ازدهی گفتن که وجه این حسار استقرائیه ازده ازدهی هم عقیه ازدهی هم کسی به قائل هم مثل خود مرموم استار اینا قاعده به این ها قائل به کسی هم نزدن ناینی هم رقید شایی بسند جنوز ماچه نکنند به نزدن ناینی که این اونگاه به لحاظ مجاری عقلیه لیکن این نظر که هم بله حاضر جاری یعنی اون اصلی که از میشه استقرائیه بله مثلا ایشون فهمدنی که ایشون خودشون نظرشون اینه اما اول که استقرایی باشه فلانه یوم که به حساب تصور یوش الاسد و آخر غیبه به اصول الاربعه فی بعض سوال شهر که مثلا بگه اگه شکل بین وجوب اعباه کلیف فبنه الاسدنباه مثلا اشون میگه ممکن است جهد شک بکنن دیگری بکنن لذا این حسرش استقرائی عقلی است و اما ثانی این که چرا مجاری عقلیه از بسید تحجیب میکنم آقای خودالا مثلا چی جوری فهمونم ام لرنشک اما انتو علم در حالتون سابره و قدع کبر اشکار اولا البته معلوم محنوم شیف نشته اما لوح حالت اصابه نه نشه وجه در خب از همین محنوم شید که چار فرح نیستان نیست چون این لومه حالت اصابقه به ام اما این اما لوح زد به اما لومه خب تجم آقاییو که ایشی هم وجود حالت اصابقه هم ده حالات صابقه ها حالت اصابقه خیلی ترجمه از ایشانه خود کردنش چار فرح خب باید بیشتر میشه دیگه ا اگر حالت سابقم هم داشت اما لوح زرد اینطوری این طوری باید چون همه رو یکی گرفتن اما هم و علم و حالتون سابقه و قد اعتبر اش شاره که قد اعتبر این نقطهش اینه که در واقع ها چون میگن ممکنه حالت سابقه باشه بسی این شاره در نظر نگیره و این در اصول موضوعی فراغانه مثل قاده فراغ قاده تجاوز مث شما ما یه وقت از سجود در حال سجده شک در رکوع بکنه رواد داره کرد یا فمزه فساله تو این حالت ثابته در رکوع و در در حال برائت که رکوع نگره بود این میدونه که سابقا مشمول دراعت بود در الان مسئول سجوده میدونه رکوع انجام بده و اگر عدم رکوع حالت ثابته شینه عدم رکوع وقتی شارع اعتبار نکرده این حالت ثابته رو شارع اعتبار میکنه و در بحث اصول حکمیه دیگه اعتبار و عدم اعتباره اصلا فصل شارعه حالتن سابقه اعتبار میکنه یا نمیکنه اینطوری. طوریه و اگر اعتبار نکرد این شاید خواهیم داد اصل برایت جاری میشه اصولان حال دیگه و ارحال مرحوم استاد به اینکه چار پشک کنن اینجوریش کردن اما هم تو علم و حالتون صادره املا به ان لا تو علم ده و حالتن سابقه و معلم یعفر در که تمام اداکان شک و فی بقایشه ناشعن نشک به المختزی علیه قول به تفسیل بنابرای این که تفسیل دیم بین شک در المختزی و مانه. و در حقیقت اگر اعتبار نکرد براعت حال ما ها از دیم یا اصلا قابل به استثم به هر حال ایشون این یه حالت گرفتن اون وقت اگر لمب تو علم لغو حال لم تو اتبر لغو حال از اون سابقه شکل یا شکیه در تکریف یا مکلقان به یمکنه احتیاط لا یمکنه احتیاط میگم پس چاکی میشه اصلا که اینشالله اصلا که این مسائل مسائل اعتباری در مسائل اعتباری هست و عقی معنی و نظر اصل و بحثیست بیت همه رو حالا من این برمشه بحثیست که ترتیب اثری نداره و فایده آن نداره که هر هست استقرائیس یا است و به جای این بحث اصولا استطاع رو با براعت در یک عدل قرار دادن و در یک تقسیم قرار دادن خالی از نقطه فنی سنی واقعا مشکل فنی داره چرا ما چون ارز کردیم این بعد از اینم توضیح میریم هم توضیح دادیم ما میگیم اصول به طور کلی دو جورن دقت مکنیم یه چند تا اصول عملیه که بعد توضیح حیرتش خواهیم داد احصاط یک خوب رو به عنوانه می کنه اصل اصصاحه هنر مهم اصصاح اینه مثلا یک حالت سابقه وجود میگه اینجا هم یک حالت سابقه حرمت میگه حرمت یک حالت سابقه اباحه است میگه اباحه است اجازه سابقه طهارت میگه طاهره یک حالت سابقه نجات میگه نجاست اجازه سابقه خیاره سف ی اورغاد بحث کردن اویش داره قبل یا علی تراشی حالا الان فهمید که شده چیزی هم نبود. دو ساعت گذشت ای این حق خیاراتش چون که اساسا چه حساب با ارخیات هر اختیار و قرض از احکام ورعی هست احکام تکلیفی هست مال عقود هست ولی دقیقاً نمی‌فهمم نقطی اصلی است اگر جاری بشه در یک کلیه در تمام این موارد خب رو به عنوان ثابت میکنه و این نکته اصلی این اصله افصلا نکته اصلیش اینه و نکته اصلی در بقیه اصول که به عنوانه ثابت نمیکنه اصلا براقت نمیگه شرب توتون به عنوان جایزه میگه شرب توتون به عنوان اینکه مشکول و غرمه است مباهاد نه شرب توتون به عنوان به فکر در براعت به عنوان نمیاد یک عنوان انتظایه یا در احتیاط نمیاد دیگه شما مثلا اگه شک کردین بین وجوب صدقه یا وجوب نماز وجوب صدقه ثابت شرعن نه میگه عقل حکم میکنه نمیگه شرعن یه حکم یکیه یا صلاح یا صدقه یا که این شون تشریف نمیدی و نسبت مصابیز و, و نکات تنجیز علم اجمالی و درزی روی این نکاح شما هر دو را انجام بده دقت دقیقه بکنید هر دو را انجام بده غیر از عنوانه فلیزا به نظر ما اصلا کاش رو میشه این کار نمیفرمون که حالا بعد آقایم برس کنم اصلا اینا دو ماهیت از اصل حمالی هست حالا غیر از اینکه که مثل تنزیلی تنزیلیست به یک شعن خاص خودش داره بلکه یک اماره میدونن و اون اصولی تنزیلی نیست لذا به سلم به ذهن ما میاد که این بحث اصول تنزیلی یا اصول محرز با غیر محرز یا غیر یه بحث حقوقی یعنی بحث قانونیه حسولا در اصول محرز یک نحر خاص از قانونه از جعله در اصول غیر محرز جعل نحر است و معیار اساسی در تقسیم این است که محصم در تمام حصم مراعات بشه اسمش اصله و الله محسن در احسان مراعات نشده خیلی. این که لحاظ حالت صابقه شده یه مطلب این که مثلا عدم لحاظی فقط لحاظ و عدم لحاظ نیست اونجا یه سمیخه اصله اینجا یه سمیخه اصله و به نظر من اینه که هم بحث خیلی بحث علمی نیست. و مفید مسلم سمر نیست و از نظر فنی و قون و حقوقی که الان محل کار ماست اصلا تقسیم با اصول عربه درست نیست احسن. حالا مرحوم شهر شکل در تکلیف یا مکلپ اگر اون رو هم مرحوم شهر بر می به جای او تعبیر میکرد به شکل در سقوط تکلیف یا سقوط تکلیف بهتر هم بودون به جای شکل در تکلیف و در مکلپ شک در صعود تکلیف باشه منظور در و شک در صعود تکلیف باشه با امکان نیاز اشتغال با عدم امکان انسای تکلیف مثلا تمام اینها هم خودش بحث داره نه اینکه حالا بعضی‌ها مثلا اونها این تأخیر قبول ندارن چه طوریه ما قبول کنیم علو تأخیر اصل اصلا اینو قبول کن ببین خب از ازشون میگن امکان اختیاریه که تأخیر معنا داره بهلاخر انسان عملا مخیره چه فایده داره اصلا تأخیر مثلا میدونه که یا باید مثلا تو اون دفترش میشه که من روز جمعه ساعت الانجیه مثال در شواهد حکمیه نیست و به ندیرش مثل ما الان بعضی از روایات داریم که دقیقا عکس هم دیگه هستن. دقیقاً. چه روایاتی در تضاد بین مثلا خونی که از هیئت یا خونی که از قدرت یعنی از چه که امروز سوالاً به های رحم میگن. تصادفاً اینکه امروز هم هست سرطان رحم. یه خونی درام هم داشت. یه روایت واهی داریم خیلی خنده‌دار واقعاً یه چیز عجیبیه. تو یک نوسه شما مثلا طرف یمنی اگر باشه این هیذ اون یسار باشه مال اون قره. یه همون روایت بمثلی بمثلی به من میگه اومد به عکس این طرف یساس باشه درست دقیقاً آکسامه. یکی شما طرف یمنی هیذ خونش همون بعدش طرف یسار بشه. در تشخیر. سه لاجی میینه عجیب آجیگا اونجاست. این حساب برم با کم داریم اما خود تو مثال عوفی میشه. مثل انسان تو ظرفش من جمعه وقت عزادن تو مسجد باشم یا نباشن. نتونست تحت خودش رو بکنه ببین باشم و نباشم بدهم ندهم. این بدهم و ندهم نقطهش جابجا شده واضح نیست. حالا فرض کنیم این چیزی نوشته بچه گویا میگه که بیا نقطه بدهم. بدهم یا ندهم. خب <تصال> این تکلیف مولادشونی ای ای. این یا اصل تکلیف مولادشونی مرحوم نایینی عزیز گویا اساس تکلیف معنا در اخری یا میاد نمیده دیگه بالاخره راهی نداره بیرونی بالاخره در وقت اردان یا چه هست یا نیست بالاخره صدقه رو یا میاد نمیده وقتی تکوینا راهی نداره دیگه چی به اساس تکلیف قرار میده ما اینطور توضیحاتی در محل خودش ارج که چرا اصل تکلیف میشه تصور کرد خلافا دمات صدر و خودت سلام نیست علی شکرمکان این تقسیم بندی رو پس این بحث و اصولا ما بحث مفیدی نمیدونیم نمی‌دونیم کشف می‌کنیم. به این که خود ما هم در خود این است. اشغال داریم. بحث اساس احیای را داریم داریم، اساس هم قبول داریم. تخیر رو خلافند واند مثلا ایم. مثلاً برای قبول نداریم اصولاً. اساس برای سیر و علوی می‌دونیم. نیست. از اصول ما نیست. استس هم یعنی احساس اولم کی شما احساس به استصحاب هم در شبهات حکمیه سه تا ما اصل عملی داریم در شبه این تکران زد کردیم سه تا اصل عملی داریم یکی استثابه که پیش مجالی نیست یکی هم قیاسه قیاس تو علمای ماجز و امارات آوردن غالبا هم تو بحث زیل دقیقه انصداد آوردن تو تنبیات انصداد که چطور زنگه قیاسی خواهدشه اونجا آوردن لکن ما نظر این که قیاس هم اصله اسه موارز، نسخه استصحاب، قیاس، استصابه یک واجبه. هیچ فرقی با نیست. این دو تا به ترتیب قیاس بین اشعار ما حجت نیست. سومی هم اساس و تار است. ما دیگه هیچ که اصلی که تشقیق خوب یعنی روی حکم داره خوب دقت بکنید. ما اصلی که روی حکم داره، غیر از این سه تا نذارید. چون قیاس اینطوری مثلا می این مورد حرام، اون مورد واجبه، اون مورد ثابت یاد اون مورد ثابت حساب است قیاس این دیگه. قیاس با استثاب کارشون اثبات حکم به عنوانه ما لذا این بحث را به طور کلی اصلا از زامه دیگه این مقرح کردیم با اصول عملیه نمیتونیم حکم رو به عنوانه ثابت بکنیم این راهی, این را. راهی که ما رفتیم اینه غیر از راهی که اثباری ها و دیگران رفتن فرقی بین قیاس و استثاب نمیتیم و ما در شواهد حکمی کلیه سه تا عرض بیشتر نداریم بله خود استصحاب در باز موضوعی فراوان داریم آدی فراوان داریم تجاوز داریم سوء داریم همه در هم از اساس داریم اساس همه در موضوعی هم. ما در شباط خوب سه تا خوب می‌یه کلیش هم ولی توی فریش شباط سه تا ازش نزدیم استصحاب هم از دار استصحاب مسلم ناینی هدج می‌زنن مرهم استصحابشون هدج می‌زنن سعی می‌کنیم استصحاب ما به عدم حجیتش این‌رسه کار گذاشتن مثل اخباری خب ما خودامون اخباری از سنی ازمون ها. ها. ها. قرن دوم ایدهشون قرن اول استصحاب حجت نمیدونستن این بحثی خیلی قدیم چون روز مصادر تشریعی از قدیم مثلا چیز مذهبی نشده استصحاب متأثر یعنی خوشبختانه شده چون تو علمای ما ایده قبول بشه ایده نداشه و یکیشم قیاسه به نظر ما که اونم در مذهب ورجت نیست یکیشم اساس و تار اساس و از کردم چون مبنیست برای این که ادعای تسانوم اصحاب شده در اساس و تهار حکمی نموضوعیه مثل یکی که سنگ از کوره ماه به باید پاک یا نفی نفسه پاک همیدن با مثال موضوع از اون یک چیز فی نفسه با عنوانه پاک باشه مرحوم استاد و مرحوم نایمی اینجا به مناسبتی متعرض اساس و تهاره شده. در همین صفحه دیوی سرشدنو ایشون سمع نعدم رو ذکر اساس اتحاره این بحث کنم مفرد کرده این دو صفحه ایشان بله دو صفحه بیشتر ولی بله سه صفحه تقریبا ایشان دو صفحه کم بیشتر از سفحه کمتر را به اساس اتحارم بحث کردن اساس اتحاره در شبات مکنه در من طلبت متعرض میشم دلیل حجت شرعی نداره ادعای تسالوم حساب شده در قدمای ادخار نیامده ادعای تسالوم حساب شده مثلا این دلیش منحسه شرعی روات یه روایت وارد کنم امار ساباتیست کنم یه مشکلات هاست خودش داره و تعدیرش هم خیلی عجیبه کلوشه این نظیف تعدیرش اینه حتی تعلمه انه و قدران که ازا قداره فقط ف اذار عالمه که آنها کادران فقط قادر اینطوری. منو وقتی کلمه ای شد، کلمه ای که انصافا موضوعات خارجی خالیش میخوره. بگیم، بله انصافا حالا از دکسی موشکل است از خود در کلیارش موشکل است، نمیتوند در. تو من هستم و همه میگن روده آمارات صبرتی. یه روده دیگه از این کل مو این تاهر است، نشه. اون در خصوص آبه اونم تاهره. اما اساس و تهاره کلوشه این نویف تاهرم نداره آها. حتی تعلمه انهو و باید اونجا نجفم نداره نویف و قدر دوستا مفهوم و عرفی هست بگیم اینجا اراده شده مسئله تهارت در اصحاب و نجازت که اساس فهمیدن این حاله که اساس و در اینجا نیوردن آقای خوی متعرض شدن خلاسه نظر و اکسیون که اینجا مسلم نداره I think it's going to be better. I think it's going to be